بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیه سیدنا محمد والد تاهرین اللهم اهل الكبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل الاف و الرحمه و اهل و والمغفره و عرض سلام و احترام خدمت سروران گرامی ضمن تبریک به مناسبت ایده سعید فطر امیدوارم که تاعت و عبادات همه شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و همه شما در زمره عباد صالح و مخلص قرار گرفته باشید خدمت شما عرض شود که نکاتی که ما قرار بود ادامه بدهیم بحث تجسم اعمال و ملکات هست که در صفحه 406 جزوه اون را شما مشاهده می کنید. من قبل از اینکه مطلب را شروع کنم اینه که باید توجه کنیم که بحث تجسم اعمال در واقع زیر ای از مطالب کیفر و پاداش اخروی هست که در کتاب های فلسفی و کلامی و اخلاقی و اناوینی مثل تجسد اعمال، تمثل اعمال، تجسد اعراض، تجسم اعتقادات، مشاهده احوال، و تجسیم الاخلاق و تکوین النیات و مطرح شده است مراد از تجسم همون انعکاس رفتارها و عقاید دنیوی آدمی در عالم آخرت هست که چگونگی تأثیر, تأثیر اونها تو سرنوشت اخروی و نحوه ارتباط میان عمل با جزای اون در واقع مطرح میشه یعنی اینجا ما میخوایم ببینیم چگونه اعمال نیک و بد انسان تو آخرت باستاب پیدا میکنه آن چیزی که ما دومال آن هستیم و به تعبیر آیت الله سبحانی من منظور تجسم یا, تم... یا تمثل اینه که آن را انسان تو این جهان انجام داده در جهان دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار بشه و به صورت کلی اگر ما کرداری را انجام میدیم حالا این چه خوب باشد چه بد باید توجه کنیم این یک صورت دنیوی داره که ما اون رو مشاهده میکنیم و یک صورت اخروی دارد که اکنون در درون ما نهفته است در... اونم در درون عمل ما نهفته است پس ما اینجا باید اعمال رو میخوایم دقت کنیم که همین کارهای که ما انجام میدیم برای این اعمال ما در واقع یک صورت اخروی هست که در روز قیامت در واقع اون شکل کنونی و دنیویش رو از دست میده و واقعیت اخرویش جلوه, جلوه گرمی شود و این موجب در واقع لذت و سرور یا در واقع آزار و اندوه برای انسان میشود خب ما میخوایم اینجا به این نکته برسیم که جزا اعمال هر انسانی عین اعمال او هست این نکتهی که هسته ما دنبال مجازگویی و کنایه و تعویل و گرایی نیستیم تجسم اعمال میخوایی این رو بگه ببینید ما پس وقتی این گونه باشیم بس نیتها رو میخواییم بگوییم ببینید بحث تمثل بحث بسیار مهمی هست اینه که مفسران و اندیشمنان به این نکته اشاره کردن ببینید تمثل اعمال من کاری به مباعث لغویش ندارم که حالا به معنای تمثیر به معنای تصویر یا صورت چیزی هست که زمانی که اون رو نگاه میکنی انگار نظارگر صورت واقعی همون شیه هست علام توا, توا در تفسیر علمیزان بیان میکنه که تمثل اونه که شخص صورت واقعی چیزی را به صورت دیگر تصور کند در صورتی که آن شیء شی صورت واقعی خود را کسب کرده باشد پس اینو توجه کنیم و مرحوم مصطفی توی تفسیر روشن این گونه گفته میگه که تمثل همون اخذ مثال و مثال گرفتنه و میگوید که حقیقت تمثل در حقیقت قدرت و قوت روحی است که بتونه در وجود خود تأثیر ایجاد کنه و طبق خواسته خود زوار خود را تغییر بده بله شکل ظاهری طبیعتا تابع تحولات روحی و باطنی است و خواه ناخواستفات روحی و خواسته های باطنی در ظاهر تجلی می شود از این جهت در واقع افراد روش، روشن و تیزبین و منور رو شما مینید اونها در واقع انسانها رو از همین زواهر و صورت اونها تشخیص میدن خاصیت روحی اونها رو پیش میرسه تا ما چون زنگارهای قفلت برامون هست اون برامون خیلی روشن نمی‌شود. پس ببینید این نکته که بیان کرده مسئله مهمی هست ما باحتمان توجه کنیم که حالا من خواهیم که جزای اعمال هر انسانی در تجسم اعمال میگیم عین اعمالش هست. و ایشان میگوید که در کنار تجسم اعمال که قالبا نظر به کردارهای مربوط به جوار انسان هست یه مسئله دیگه ای هم مطرح میشه که از اون به تبلور تجسم نیت ها و ملکات نفسانی تعبیر میشه. که منظور اینه که صورت حقیقی انسان بستگی به همون نیت ها و خصلت ها و ملکات نفسانیش دارد بر این مبنا اگر انسان ها از نظر صورت ظاهری یکسان هستند ولی از نظر صورت باطنی یعنی خصلت ها و ملکات و انوا و اسناف اص... در واقع متنوع می باشند پس ببینید ما باید این رو لحاظ کنیم تا مطلب برامون روشن شود جناب حکیم سبزواری در شرح منظومه بیان داشته که انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتشون چند در واقع شما میبینید که یا فرشته هستند یا حیوان هستند یا درنده یا شیطان دیگه ما خارج از این نیستیم دیگه به اعتبار خلقهی الانسان و ملکون او جمون، او شیطان دیگه فارق از این که ما نیستیم ببینید وقتی ما این چار نوع رو میبینیم یعنی انسان از نظر صورت دنیاوی که یه نوع بیش،, بیش نیست شما همه آدم ها رو میبینید تو خیابون میرن یک در واقع سری دارند و یک ای دارند و پا و دست و پایی دارند دیگه ببینید اینجا حاله چه میشود؟ جنبه های قوای شهوانی و غذبانی که بر انسان در واقع قلبه میکنه که اینها در واقع قرائز ما را در واقع شکل می دهد، صورت اخروی ما در واقع حیوانی و درن، به شکل درنده می شود حالا اگر مکر و حیل حکمران وجود ما بشود صورت اخروی ما شیطانی می شود و اگر اخلاق پسندیده توی نفس ما رسوخ و نفوذ پیدا کند صورت های زیبای بهشتی در واقع تمثل پیدا خواهد کرد دیگه ما خارج از این که نیستیم و شما باید وقتی این شکلی میشود میتوانه تبین دقیقی داشته باشید برای همینه که حکمهای ما میگن میگن آقا تجسم عمل به این که رفتار و کردار آدمی تو جوهر نفسش تقرر پیدا کنه مستقر بشه بگونه ای که جز ملکات قائم به نفسش بشه و ما میگیم شعون وجودی اون شخص شده دیگه و این در واقع خدمت شما شود اعمال انسان با نفسش متحد می شود و قیام جوهری به خودش داره حالا اگر اعمال توی دنیا خدمت شما شود که حالا ما میریم جلوتر میگن بس اعراض هست دیگه بس اعراضی هست دیگه آقا اگر اعمال توی دنیا از اعراض به شمار میاد اما بر اثر کسرت در واقع اینها کسرت هایی که رخ داده اینقدر تکرار شده جزی از ملکات نفسانی میشه و این ملکات هم امر وجودی و جوهری خواهد شد که شوان میریم جلوتر مباعث اینجا مشخص میشود بحث اعراض و ای که وارد میکنن ما میگیم که این رو چگونه حل کرد خب ما میرسیم چون شقوق زیاد دارد مطلب دیگه میخواییم پراکندگوی نکنیم میریم سراغ تجسم اعمال تو آیات قرآن کریم یکی از آیاتی که سراحت بر تجسم اعمال دارد بحث حضور اعمال انسان ها در قیامت را مطرح میکنه آیه سیوم سوره مبارکه آلمران هست که میفرماید یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر مهدارا و ما عملت من سوئن تبدلوان بینها و بینهو امدم بعیدا که اشاره میکنه روزی که هر کسی آنچه رو که از کار نیک انجام داده حاضر میبینه و آرزو میکنه که بین او و آنچه از اعمال بد انجام داده فاصله زیادی باشه خب ببینید اینجا خداون بحثی که مطرح میکند باید توجه کنیم نکته که وجود داره بس نمیگه که آرزو میکنه اعمال بدش نابودشه ها. میفرماید لو ان بینها و بینه ها امدن بایدا. با امد به معنی زمان محدوده. امد با ابد فرق دارد. ابد زمان نامحدوده است. امد زمان محدود است. ما توی امد به انتهای زمانی و سررسید مدت توجه داریم در حالی که در عبد این نکته نیست نمیگه که آرزو میکنه اعمال بدش نابود شه. چون که میدانه چیزی در جهان نابود نمیشود بلکه آرزو میکند با آن فاصله بگیرد ببینید این خیلی مطلب دقیقه است تو دو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا خب با این نکته گناهکاران و نیکوکاران همگی اعمال خودشون را در قیامت حاضر می‌بینن فقط نکتش اینه که نیکوکاران از مشاهده اعمال خودشون مسرور میشن و بدکاران از مشاهده اعمال خودشون در واقع اندوهناک میشوند و آرزو میکنن که در واقع از اون فاصله بگیرن و اینم نه فاصله مکانی که در واقع فاصله زمانی دور و دراز هست. خب این مطلب رو شما به دقت کنید و ما از این نکته متوجه میشیم بحث تجسم اعمال را پی می بریم. بحث تجد خدمت شما شمار شود خیر و سو که همین اینها را، شما لحاظ کنید این همنشین هایی که اینجا اومده تجد نفس معاملات من خير مهذرا در واقع از ماده تجدا از ماده وجدان هست که یافتن ضد فقدان و نابودی هست خیر و سو هم به صورت نکره اومده یعنی ببینید همه انسان ها در قیامت تمام اعمال خوب و بد خودشون را هر چند کم باشه نزد خودشون میابند این اینجا در دقیقا بس حضور اعمال و تجسمشون رو توی قیامت داره به ما بازگو میکنه که حالا اگر خواستید برید تفسیر این آیه رو در تفسیر فریقین مشاهده بفرمایید آیه دیگه که ما می‌بینیم خدمت شما عرشبد آیه 174 سوره مبارکه بغره هست که اینجا بحث خداوند در حقیقت داره اون کسانی که حق را کتمان میکنن در سیاق اون هستیه ان الذين یکتمون مَا انزل الله من الكتاب و بِهِ به قَلِيلًا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القيامه ولا یزکيهم ولهم عذاب علیم خب الان بخش اول آیه رو ما فعلا فاکتور میگیریم بخش دوم آیه در واقع اشاره میکنه حالا داره در مورد اینه که کتمان کردن میگه می که اونه که کتمان میکنن آنچه را خدا از کتاب نازل کرده و اون را به به های کمی میفروشن آنها جز آتش در واقع چیزی نمیخورند یعنی ببینید این وسط در تفاصیل اومده دیگه اینها در واقع هدایا و اموالی که از این رهگذر گذر به دست میارند میارن میخوابی حقیقتش آتش سوزان هست و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمیگوید ببینید این شما این بخش میانی آیه رو که مشاهده میکنید مسئله تجسسم اعمال رو داره بر ما بازگو میکنه. نشان میده اموال حرامی که یه ده در واقع اومدن با کتمان حق در واقع به دست آوردن گفتم که هدایا و اموالی را تو این مسیر به دست آوردن این آتش سوزانه که در درون وجود اونها هست این اموال در واقع آتشی است که تو دل اونها وارد میشه و در قیامت به شکل واقعی خودش مجسم می شود و خداوند حالا از باب مجازات مهم معنوی که از مجازات‌های مادی هم درد نکتر هست می‌فرماید لا یکلم مهم الله یوم القیامه ولای زاکیم ولهم زاب نالیم خدا روز قیامت با اونها سخن نمیگه، اونها رو پاکیزه نمی‌کند و زاب دردناک در واقع در انتظار اونها هست در شما سوره نسا ایه دهم ده نیز مشاهده میکنید که میفرماید ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم nara و سیاسلون سعرا اینجا در دو باز تجسم اعمال و چهره باطنی و حقیقی اعمالم رو بیان میکنم افراد کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم میخورن میگه در حقیقت تنها آتش میخورن و به زودی در شعله های آتش دوزخ میسوزن ببینید این آیه نیز مانند آیه پیشین که ما گفتیم مثل آیه 174 هم نکته را دارد مونتا اینجا یه بحثی داره تو این آیه که سراحت داره خدمت شما عرض شود که بحث در بحث دوران جاهلیت و خلافکاری اون زمان رو که میگه یه عمل زشتی رو داره میگه بحث خوردن مال یتیم هست که اینها رخ میداد تون زمان و متاسفانه تو صداهای بعدی و اکنون هم ما مشاهده می‌کنیم که یه سری این کار خبیص رو مرتکب میشن و خدمت شما هر شاید بحث تصرف ناروا در اموال یتیمان هست که داره بحث تصرف رو مطرح میکند خدمت شما عرض شد که توی کتمان حقایق و تحریف آیات الهی گفتیم که یه ادنه منافعی به دست میارن در آیه 174 مصوری بغره که این درآمد آمده ناچیز اون چیزی که آلا به دست میارن حقیقتش جز آتش نیست خب حالا میخواد بگه که خدا داره تو این آیه میگه میگه که حالا افرادی که میان تصرف میکنن در اموال یتیمان در واقع تو همین دنیا دارن آتش میخورن و به زودی تو جهان دیگه یعنی در قیامت سیس لونه اومده دیگه سوفه هم نیمده نزدیک رو داره میگه به زودی هم تو جهان دیگه داخل در آتش برفروخته میشن که به شدت اونها رو میسوزونه ببینید شما از این دعایه به جایه ده همه سوره نساء برداشت میکنید که اعمال ما افسون بر چهره ظاهریشون یه چهره واقعی دارن که تو این جهان از نظر ما پنهان هست اما این چهره درونی در قیامت ظاهر میشه و مسئله تجسم اعمال رو تشکیل میده که باید توجه کنیم که چهره واقعی عمل همیشه تناسب خاصی با کیفیت ظاهری اون داره چطوری خوردن مال یتیما غصب حقوق ایتام در واقع قلب یتیم رو می‌سوزونه روح او را رو آزار میده چهره واقعی این عملم در واقع آتش سوزان هست و خدمت شما عرض شود که وقتی ما این در واقع حقیقت را بدانیم مانع در وجودمون در واقع یک مانعی ایجاد خواهد شد که بخوایم تصرف در انوال خدای نکرده ایتام کنیم پس این را باید بهش توجه کنیم اینه که حالا ما از توی روایات داریم در تفسیر البورهان زیل آیا اومده از در واقع احمه امام باغری امام صادق علیه السلام نقل شده که شخصی پرسید که این مجازات آتش درباره چه مقدار از قسم مالی یتیم هست همان فرمودند در برابر دو درحم یعنی ببینید حتی اندک مقدار رو هم امام بیان کردن خب اینم مواردی که هست که بیان کردیم یا یکی دیگه از آیاتی که ما داریم خدمت شما عرض شود آیه 13 همه سوره مبارکه حدید هست که می فرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات للدین آمنون درونا نقطه اسم نورکن غیلرج و وایکن، فلتم س نورن فظور و بین هم به سور له با باتن هوفیه رحمه و الظاهر هم ان قبل له عذاب. روزی که در واقع مردان و زنان و منافق به معمنان میگن که نظری به ما بیاف تا از نور شما پرتیم بگیریم با اونها گفته میشه که به پشت سر خودتون برگردید و کسب نور کنید. که حالا اشاره میکنه در ادامه در این هنگام دیواری میونه اونها زده میشه که دری دارد درونش رحمت و بیرونش در واقع عذاب هست که آیت الله سبحان اینجا بیان میکنه که ما متوجه میشیم از ظاهر اینایه که در قیامت وجود انسانهای با ایمان به صورت منبع نوری در اومده که پیش رو و اطراف اونها را روشن میکنند شما بس اقتباس رو دارید اینجا از ماده قبصب معنای گرفتن شعله ای از آتش هست. بس انظرونا انتظار کشیدنه یعنی کمی به ما مهلت بدید تا ما هم به بش شما برسیم. ببینید اینجا بس خدمت شما عرض شود که اینا اشاره میکنن که اینجا جای تحصیل نور نیست. مؤمنان به منافقان میگن میگن با میبایست اون را تو دنیایی که پشت سر گذاشتید از طریق ایمان و عمل صالح به دست آوردید ببینید آن چیزی که ایشون مطرح میکند اینه که به برحال ما باید توجه کنیم که این نور از کجا حاصل شده که از خود آیه مشخص میشود و وراکم فلتمس و نورا اینا تو دنیا حاصل کردن و در حقیقت ایشون میگه که چگونه این نور از دنیا نشعت گرفته دو تا احتمال هست. یکی احتمال شخصیت والای اونها در و اطاعت و عبادت به صورت کانون ملکات زیبا در اومده پس اون ملکه را حاصل شده و در آخرت در واقع به صورت نور تجلی پیدا میکنن. دومون که چهره واقعی اعمال صالح و صفات نیک مؤمنان در واقع چیه نمایان شده و به صورت نور تجسم یافته در هر صورت واسه تجسم اینجا مراد است از این آیم سراحت در تجسم دارد